محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است نقمه شوب شهادت سردهید بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید محرم متفر است که اسلام را نگرد داشته است خداکانی سوی الله علیه را هست که اسلام برای ما زندانی هستند. السلام علیکم يا يا يا السلام يا يا ابا عبدالله السلام علی الحسین يا السلام يا سلام على وجه يا أبا عبد الله شهادت تو جهادت تو استادگیت تو اسلام را رونق داد دین پیامبر را جان تازه بخشیم قتلت یوم الحساب السلام علی الخط اگر اون شهادت نبود از دین پیغمبر چیزی باقی نمی‌موند امروز به اون زریه شش گوشه و اون قبر مطهر بخشین دلم, دلم کنار زریه تو جاگره نوری ز فیضه می انتها گره ما هم گرچه دوریم ولی به یاد حسین ابن علی به عشق او سخن می گوییم یادم نمی رود که ز التاف مر قدر هر بار قلب مرده من هم شفا گره السلام علیک یا عبا عبدالله سلام او که چراغ هدایت است و کشتی نجات و سلام بر شما عاشقان کوی حسین علیه السلام ما نیز در این ایام حزن و ماتم نام حسین علیه السلام رو بر دل و زبان جاری میکنیم و هم با شما سرود قمی سرائیم و ایام قمبار محرم رو خدمت شما دل سختگان تسلیت و تعذیت هرز میکنیم ایم دوباره آسمانم قم گربده مهل آن دارد دوباره دلم تاقت نداره دلم طاقت ندارد به سینه نیرم اتم بازدم شد آید گرو از راه آید حلال ماه سروی دهش دگورت ماو که به یک شاه آیا سدای آیا سدای زدجی یکوانوی محمد نشین چرا این کاربان سوی مسیمت بازن و فرزند و پیر و خورد با این حیم و خرگاه آیا صدای آهایا صدای ناله از پسیر کاروان السلام علیکم یا ابا عبدالله خداوند رو شاکر هستیم که توفیق داده خدمت شما بزرگ برسیم و از ارادت کنیم به ساعت مقدس آقا عبا عبدالله حسین سلام است که در این, بنده در این برنامه بنده محمد جواد محمدی خدمتگزار شما عزیزان باشم به اتفاق دوستانم و امید هست که این برنامه مورد توجه و انتتون قرار بگیره از آداری هاتون مقبول درگاه حضرت حق باشه دوستان گرامی با کاروان کربدا درس های از آشورا بخش گزارشی از شهرستان های مختلف و بحث اصلی ما که گفتگو با استاد داجبردی هست در برنامه اش عشق به خطبه منای حضرت عبا عبدالد رسید علیه السلام میپردازه که انشاءالله شما بزرگ هم رفتن بشتوید و استفاده لازم رو ببرید استاد داجوهردی بزرگ دارن سلام میکنم به شمای داجوهردی خیلی خوش آمدیم سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم من همه نوبی خودم ضمن عرض تسلیت این ایام محضر آقا امام زمان علیه السلام شیعیان و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم ان شاء الله بحث و شروع میکنیم همین دقایق ابتدایی با حجت الاسلام و المسلمین استاد لاجوردی درباره خطبه منا بیشتر صحبت کنیم و اصلا آشنا بشین با خطبه منا. آقای لاجوردی، یه معرفی شامده. اجمالی از خطبه منای حضرت ابوالله داشته باشید ان شاءالله به بعد به بحث. اجازه می‌خوام قبل از اینکه وارد خطبه بشم خدا رو شاکر باشیم. قبل این لطفی که انایت کرده و همه حزنی که در قلب داریم و بغضی که در گلو داریم شاکر باشیم که خدا ما رو سر سفره ولایت آقا عبا عبدالله نشانده و ما رو بهرمند کرده من گاهی فکر میکردم اللهم لکه الحمد هم نشاکرین لکه علا مصابه چرا همه یه زیارت آشورا که منشوره ولایت و منشور شهادت آقا عبا عبدالله هست و این همه تأکید شده نهایتش با سجده که سجده قرب و در قربم خدا رو سپاس میکنی اللهم ملک هم در مصیبت آقا عبا عبدالله بر زمین آسمان سنگینی کرده عرشیان رو به غم نشانده فرشیان رو ما زده کرده بل ارتباط بین فرش و عشت رو ایجاد کرده مصباح شده سفینه شده آقا عبا عبدالله حرف دیروز نیست حرف امروز است و حرف همیشه تاریخ تا قیامت است خدا رو شاکری و بر مصیبت ایشون عشت میباریم و دل محزونیم و قلب آکنده از ایمان خودمون رو در محضر ولایت حضرت عرضه میکنیم تا ما آشورایی کند بارو به ما پروال پرواز بدن و ما رو از این هزیز دنیا از این زلت نفس از این حقارت دنیا به وسعت عشق خودشون که بهشت نخده رهنمون کنن اینی که بحث آدم رو با این شروع میکنم صلی الله که یا ابا عبد صل الله صلی الله علیک یا ابا عبد صل الله صلی الله یا عبد الله در رابطه با سوالی که فرمودید من عزیزان شنونده رو توجه میدم به یه مسئله ای و تشکر میکنم از عزیزانی که این بحث و پیشنهاد کردن انصافا سلیقه خوبی داشتن ما جا داره در ایام محرم بپردازیم به ابعاد مطرح نشده یا کم مطرح شده ابعاد حرکتی آقا و ابو جایگا و جایگاه و نقشی که حضرت ایفا کردند و دارن ایفا میکنن خطبه رو که فرمودید خطبه است که حضرت مولا آقا عبدالله الحسین در منا ایراد کرده سخنرانی که عزت داره بنده. بعد از سفری که آقا حج انجام دادن همراه عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر آمدن در منا که معمولا در منا کلیه هاجی ها اونا که قبل میرن و بعد میرن در منا جمع هستند و اینکه امامیه معصومین حتی موقوفاتی رو گذاشتند که در منا این موقوفه رو مصرف کنید برای برگزاری ازاداری ها و برای برگزاری مجالس حضرت این سخنرانی رو انجام دادم چند مطلب باید حالا فهرسوار من مطلب بهش توجه کنیم و انشاءالله خطبه رو در این چند روزی که در خدمت شما هستیم همراه عزیزان بهش بپردازیم یکی زمانی که حضرت این خطبه رو ایراد کردن در چه سالی است؟ و اینکه چه کسانی رو جمع می‌کردند کردن بخاطبین حضرت. زمان بیان ایراد و زمانه تره این بله خطبه و مخاطبین این خطبه چه کسان... کسانی نشستن و حضرت چه بیاناتی داشتن و تحلیل این بیانات حالا یک امام معصوم در یک شرایط خاص اجتماعی که یک سال قبل از در معاویه است معاویه از سال 56 و هجری یعنی در حقیقت از سه سال قبل شروع کرده به مقدمات چینی و بیعت گرفتن برای یزید یک بد، بدعت و یک مسئله بسیار حساس بعد از سالها اقدامات منافقانهی که معاویه داشته من نمیخوام اینجا تأثبار صحبت کنم اقدامات رو مطرح میکنیم تاریخ رو مطرح میکنیم و تحلیل میکنیم اسلام رو از درون پوک کرده چیزی از اسلام باقی نمانده آخرین تیری که معاویه میخواد بزنه قبل از مرگ خودش موروسی کردن حکومت دینی در دقیقت دین رو از بین بردن به تمامه بدعتها رو ایجاد کرد عزیزان و بزرگان دین رو کشت صالحان رو از حکومت که هیچی از صحنه اجتماع دور کرد شهید کرد اقداماتی که در زمان آقا امیرالمؤمنین انجام داد مفاسدی رو که در حکومت حضرت با خریدن افراد ایجاد کرد بدعتهایی که در دین ایجاد کرد حالا من بعضی از بدعتهای فاهشی که ایجاد می یعنی در این حرف رو که یزید زد که رسولی نبود پیامبری نبود یعنی شما این سؤالی که بارها مقام رهبری رحبری فرموندن چه اتفاقی افتاد که سالش هست شخص یزید نامی جرأت پیدا کنه این اقدامات رو انجام بده مقدماتش رو معاویه ایجاد کرد جریان عمویه ایجاد حالا این مقدمات رو توضیح میدیم خب حضرت آمدن دارم با مخاطبی میخوان صحبت کنم مخاطبین کیا هستند چه شخصیتهایی جمع کردن من فقط زمان رو مطرح بکنم باید. یک سال قبل از درگذشته معاویه است. حالا معاویه کیست چه اقداماتی کرده چه خطری و چه انهطاط شدیدی ایجاد کرده حضرت بهش میپردازم و چه کسانی باید این اصلاح رو ایجاد کنند مسلح باشند و وظیفه خودشون انجام بدن در جایگاه خودشون بنشینند من در خدایی در رابطه های مسئله اجتماعی گوه من سکوت کردم گفتم همینطوری که برای حرف زدنمون دلیل بد داشته باشیم برای سکوت کردن هم بد دلیل داشته باشیم جایی باید سکوت کرد اما سکوت سکون نیست منه. سکوت بی تفاوتی نیست همینطوری که همیشه حرف پیام نیست حرف اقدام مثبت نیست جایی که به تحوید آقا امیرال مؤمنون باید می استادن, استادن، جایی که بعد سب می نکردن جایی که بعد اعتراض میکردن نکردن جایی که باید کمک می کردن نسته حق رو نکردن اینا چه اقداماتی بود که انجام ندادن که باید انجام و از چی آقا عبا عبدالله اینقدر احساس خطر می که نهایت منجر میشه شه به از کنم؟ مرگ معاویه و بعد ازم مرگ معاویه مسئله غلی احسید و مسئله امامت و خلیفه بودن یزید و اونو که حضرت کاملا دیگه رو عمل میکنند و کاملا مخالفت میکنند و جریان از کنم خدمت شما آشورا و حرکت آقا عبا عبدالله شروع میشه که به نظر من برای تحلیل حرکت آقای ابو عبدالله ببینید ازت چرا این گونه در شعری که داشتن میخونن اول بحث شما زیبا بود چرا با فرزندان چرا با دخترها چرا با ناموس حرکت میکنه حسین چرا از این مسیر تحلیل حرکت میکنه چرا عیان حرکت میکنه چرا اعلام میکنه چرا میاد نکمه این چراها در تحلیل این خفته نهفته است که جامعه دینی احتیاج به یک عمل جراحی داره احتیاج به یک خون مجدت ولی لیگ خدا داره و اینها وقتی که من و شما در جایگاه خودمون نشستیم یا اماممون به خون می یا اماممون در پرده قیوت خواهد داد به همه این چراها من تیتر بحث و مطلع گردم اینشالله در مباحث بهش می پرد انشالله خیلی ممنون و از شما شهادت حسین علیه السلام شعلهی در جانها برمی که تا ابد به سردی و خاموشی نمی هرکس نشان از این شعله ندارد مرده است چون در جامعه بارقه این شعله مقدس فرو افتد و عشق خون خدا در رگهای عالم به جریان درآید شور حیات و حرکت یابد هرکس کس حسین علیه السلام را شناخت چراغی در ظلمت و سفینه‌ای در موجخیز حادثه یافت است الله علیک یا عبا عبدالله محرم از راه و من بانال و آه بگو عبا عبدالله و سر قریب تو داغتون کرده نهتیرم اینقدر زبون میگیرم آخر بر آتی می میره و سعی غریب ماده چشم آگزین آبونه عشق الی مادر ماده بر آشی خونه و سعی غریب ماده و غریب ماده درس دارد امام حسین برای نه فقط برای شیعه نه فقط برای مسلمان ها برای احرار عالم برای احرار عالم درس دارد اشک علی غورون مادر بر اشی خون حسین و زهریه ماده حسین غریبه ماده خب دوستان گرامی باز هم تسلیت و تحضیت بگم فرا رسیدن یام لیالی ماه محرم رو و انشاءالله که در ازاداری های خودتون هم دایخه بفرمایید. با حجترستان و مسلمین با سادر صحبت میکنیم درباره خطبه منا خطبه ای که یک سال قبل از درگزشت معاویه ایراد شده به حضرت عبا عبدالله در سرزمین منا این خطبه رو بیان کردند حالا با مخاطبین این خطبه هم اگر بخوایم آشنا بشیم باز باید گوش بدیم به سخنان استاد سخنونه هم تو یکی از تدفرمودین من به خاطر اینکه تاریخ کاملا مشخص بشه عزیزان که اهل تحقیق هستن به این مطالب دقت کنم سال 60 ماوی درگذشت مرگ ماوی است بنابر نقل مشهور و معروف یک سال قبل از مرگ معاویه است سال پنجا و سالی که معاویه آمد با دسیسه و در حقیقت با رعب اومد بیعت گرفت برای یزید سال پنجا و شیشه معنی یعنی دقیقا چهار سال قبل از اینکه این حرکت آشورایی ایجاد بشه درست. تقاتلی که میدوند شخصیت یزید، شخصیت این معاویه خیلی صحیح است بود عمرو عاص هم که کنار ایشان یکی از نابغه بهش میگفتند بله. اقداماتی که معاویه کرد ان روزهای بعد بهش معنی فردادن. بله. شناخت شخصیت معاویه، اقدامات معاویه و چرا این کارو کرد. و تخلفاتی که داشت و ای که معاویه ساخت برای اینکه یزید ادامه بده، هیچ چی از دین باقی ماند. و من باقی نمانده بود. خب حضرت حج رو انجام دادن سال پنجاه و بله این واقعه خطبه منا یا سخنرانی حضرت دقیقا متصل به حرکت حضرت یک سال و اندی بعد آشور اتفاق میفته خیلی نزدیکه خیلی میتونه تحلیل بکنه چراهایی که در مورد حرکت آقا با عبدالله و اهدافی که حضرت داشتن و چگونگی حرکت حضرت ما باید تحلیل بیا ان ما انشاءالله توی از مباحث بهش میپردازیم که اگر ما میاییم میگیم شهادت هدف حضرت هست با این بیانات حضرت برد سازش داشته باشه اگر میگیم حکومت حضرت دفت حکومت بکند و از کنن برای اینکه که خوب حضرت تحلیل نداشتن که خدای نکرده که اهل کوفه وفا نمی کنه حکومت حکومت پایه میخواد بقیه. پایش فهم و درک مردمه مردم به این حد نرسیدن تا بتونن حکومت علوی رو احتدار بشن پس حضرت دف در, در این جایی که تحلکه بود حکومت هدف بود یا حکومت وظیفه و هدف چیز دیگه است. شفا این مطالب رو که می‌کنم به هیچ می دقیقاً در این خطبه خطبه بهش پرداخته شده خب زمان چه زمانی است یک سال قبل از مرگ ماویه داستان این خطبه و حرکت بعدی اغا و عبدالله چی حرکت آشورایی است خیلی متصلجت زمان به هم مخاطبین کیا همراه حضرت بودند از کردم از بزرگان بنی هاشم و خانواده حضرت دراج همه هستند حضرت این داستانم دقت کنن عزیزان. رفتی به عرفه دعای ما در عرفه نداره. داستان دیگری است. و خیلی هم خوبه همینطور که ما دعای معمولاً در روز عرفه رو تو مملکته اسلامیمون شاخص کردیم. مناسبه ما خطبه این روزم از کلمات آقا ابا عبدالله استفاده کنیم خطبه رو در همان زمانی که بوده قبل از شروع محرم که وارد محرم میشین این خطبه خوانده بشه خیلی محتوا ایست خیلی است. خب از دستور میدن به خانوادهشون که بیایید در منا چادر بزنین در منا بودن مانه. همه رو جمع میکنن همه خانوادهشون همه افراد بنی هاشم در تاریخ داریم که 700 نفر از همراهان از بزرگان دین از اصحاب رسول الله عص این، از کسانی که حضرت رو درد کرده بودن و کسانی که از صحابه، شما یه صحابه داری، یعنی که حضرت رو حالا یا روایت حضرت نقل کردن یا حضرت رو درک کردن، یه کسانی که صحابه رو درک کردن بهش میگن تابعین یعنی اونها نسل دومه. بحنه. نسل اول دوم که تو انقلاب میگیم خیلی جا داره بهش بپردازیم. حضرت اینا رو دهامت میکنه. من اینجا یه نکته رو مطرح کنم، بدانم اونهایی رو که برای خودشون این شرافت رو قائلن که شرافت هست ما همراه امام بودیم ما کنار حضرت امام رحمت الله علیه بود این شرافت هست و این مسئولیت هست بله. بدانیم که مخاطب کلام امام برای انتقال معارف انتقال ارزش شما هستید شما شرافتتون مسئولیت داشت مسعودان تعبیر جزات الهی داشتن رو خواست همین حالا من تو پلانتز رو مطرح کردم اگه چه کسانی رو دعوت کنه خیلی مهمه همه خانوادهش مخاطب اصلی حضرت هن. چون فردا باید اینا بار حرکت حضرت رو به دوش بگیرن پس خانواده بعد آماده بشه بنی هاشم بعد آماده بشه را باید تیز بشه بدنها بعد آماده بشه فردا میخواد بار سنگین رسالت عربی رو بپته بگیر. میخواد اون حفره هایی که ایجاد بشه پر بشه خواست جهان اسلام رو حضرت جمع میکنند، دعوت میکنند، می دونه دونه دعوت میکنند 700 نفر رو یک سمینار جهان اسلامی در منا بعد از اعمال حج حج حج توحیدی، حج برای ایجاد وحدت، حج برای پرکندن حفره هاست ایجاد میشه نقشه حج رو نشون میده در احیاء در حقیقت بینش های اسمال نمیتونیم بیتوجه بشیم خب بله از تابعین این چه کسانی بودن و از اصحاب چه کسانی بودن بزرگان قوم بذارید من اینجا هااش رو وقت دارم یا تو پنج وقت بعدم بگم میتونم حالا مطرحکی دقیقه بله. بله حالا اینا تیتر مثلا میتونم میکنم بحث بعد مطرح میشه ببینید زمانی که اسلام در جزیدت العرب آمد سیستم اجتماعی جزیرت العرب قبیلعی بود بانده. قبیله و رئیس قبیله و بزرگان قبیله حکم خدای قبیله رو داشتن بانده. وقتی که اونها ایمان می همه ایمان می آوردن. وقتی که اونها بر همه بر می گشتن. همیت همیت الجاهلیت بانده. بینش و شناخت تمام نبود نه اینکه اصلا نبود اما این نفوذ قوم‌گرایی گرایی، تعصب رو قبیله خیلی سنگین بود و هنوزم هست هنوز هنوزم هست حالا تو یه جایی نجات است اونجا قبیله بود گروه گروه ها و قبیله ها بودن وقتی قبیله ایمان می آورد به تبع اون فردا خلون فی الله جا گروه گروه و این در مقام تمجید نیست آیه قرآن در مقام بیان یک مشکله به یک کار انجام بده آن افراد آمدن افراد گرایش پیدا کردن گرایش اونها وابسته از شرایط قومیست یا شرایط فشار است شرایط انتخاب و ایمانی نیست فصبه به هم دارد بک و استغفرهو استغفالی جبران برو بکن بانه. رو اینها کار کن ما اول انقلاب گرایش به انقلاب واقعا پیدا کردند حجاب ها عوض شد اونا که مثلا بی هجاب بودن با هجاب شدن اونا که من یادم منزله که از دوستان تهران می رفتیم مثلا شمال تهران بود ما رو دعوت نمی‌کرد. کنم گفت زش می دونم. یعنی اوائل انقلاب فرهنگ ساده زیستی به خاطر حضور انقلاب و مبانی انقلاب و اهداف انقلاب و فرهنگی که ایجاد کرد یدخلونه در انقلاب ما میدخلونه افاجا فوج فوج اومدن اگر اونها کار نشه خب قبیله ها و بزرگان که آمدن یک مسئولیت ایجاد میکنن این قبیله هنوز ادامه داشت تا زمان آقا عبا عبدالله یعنی بله. حضرت بزرگان دینی علمای دینی که تاثیر گذار بودن سران خوشنام قبیله که تاثیر گذار بودن هم افراد اندیشمند هم افراد فریخته بهم. هم افراد تأثیر گذار و صاحبان قدرت اجتماعی و سیاسی و تربیتی رو دعوت کردند. اینم مخاطبین پس مخاطبین چه کسانی هستند؟ خانواده حضرت بنی هاشم نیکنامها، تابعین تاب اونهایی که از صحابه باقی ماندند بزرگان چون تعابیر حضرت وقتی که اقرار از اینها میگه حضرت میگه اگر کلام مرا شنیدید و به من حق دادید و حق دونستید وزیفتون هست که این رو ابلاغ ابلاغ, ابلاغ. اون شبکه جهانی اطلاع رسانی جهان اسلام که بیباید گسترش پیدا کنه حضرت اولین نقطهشو رو و اولین کلیدشو در با این خود بزدن اینا مخاطب بودن با کاروان کربلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و, نبینا و محمد و الطاهرین خدمت همه شما عزیزان شدوند عرض سلام دارم و فرارسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تسریعت عرض می کنم. قیام خونین کربلا با مقدماتی آغاز شد و نهایتاً به رخداد بزرگ حادثه کربلا انجامید و طبیعتا پیامدها و نتایج و آثاری برش مترتب شد مقدمات این قیام بعضا مقدمات بعیده بود مثل حوادثی که بعد از رحلت پیان اکرم صلی الله علیه و آله رخ داد به حوادث بعد از اون و همطور که رفت رفت اهل بیت علیه رو از حقوق حقی خودشون دور کردند معارضان اهل بیت علیه مستلام زمینه های رخ داد حادثه و فاجعه بزرگ همچون کربلا پدید آمد اما برخی از حوادث و مقدمات هم مقدمات غریبه هست یعنی مقدماتی که نزدیک به حادثه کربلا بود که در اینجا فهرستوال به برخی از اون مقدمات اشاره می کنیم می توان گفت که مرگ معاویه در نیمه رجب سال شست هجری به گونه ای رقم زد مقدمات قریبه و نزدیک رخداد حادثه کربلال وقتی که معاویه به درک واصل شد در نیمه رجب سال شستوم هجری و بر اساس زمین چینی هایی که کرده بود حکومت به فرزندش یزید رسید یزید به نقاط مختلف نامه نوشت و از والیان و کارگزاران معاویه خواست که برای او از مردم بیعت بگیرند از جمله به مدینه نامه نوشت برای ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان که والی مدینه بود و همونطور که همه شنیدیم او از امام حسین علیه السلام و همینطور از عبدالله ابن زبیر طلب بیعت کرد و امام حسین علیه السلام در اون مجلسی که در خانه ولید ابن عتبه تشکیل شد امتناع از بیعت کرد و از منزل خارج شد و فردای اون روز یعنی هنگام شب شب هنگام که از جهت تاریخی گفتن دو شب مانده به آخر ماه رجب بود حضرت از مدینه همراه اهل و خاندانشون خارج شدند و مسیر مکه رو در پیش گرفتند و مخفیانه حضرت شبانه به سمت مکه حرکت کردند وارد مکه شدند در سوم شعبان و از سوم شعبان تا هشتم زلهجی روز ترویهاس این چهار ماه و پنج روز حضرت در مکه مقدمات قیام رو فراهم کردند و نهایتا در هشتم زلهجه روز ترویه به سمت عراق و کوفه حرکت کردند و کار منجر شد نهایتا به حادثه خونین کربلا در ماه محرم سلام عليك يا کربلا بخشی است که هر روز در این برنامه تقدیمتون میشه و در اون سخنان حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد رضا جباری رو میشنویم درباره وقایع قیام عاشورا هر روز به نکات همون روز تقریبا اشاره دارن استاد جباری خود دو دقیقه ان هر روز با این بحث همراه باشید امروز روز مسلم است و مسلم که درود خدا بر او یعنی سبزترین ترین قاصد بهار در سردترین خزان کوفه او با شکوفه های از گلستان فضیدت و کرامت آمده بود تا کوفه را گلستان کند کوفیان صدای پای سبزترین ترین سپیدار را در کوچه های خیش نشنیدند چرا اسیر زمستان بودند کوفه در را به روی بحار بست مسلم مرغ باغ ملکوت بود اما کوفه کوچه در کوچه عالم خاک کوفه تاریک است و تاریک آه از این کوفه و مردمانش که هیچ کا قدر چراغ را ندانستند ای کوفیان بمیری در جهل و بی و من ر <تصفيق> از نکات اعجاب انگیز سخنان حضرت عبا در اون سالهای زندگانی خودشون و در سرزمین منا این بیداری است که هنوز هم در کلام آقا ما میبینیم یعنی خیلی تطبیق داره با امروز جامعه ما هم حتی مخاطبین این پیام شما از مخاطبان خطبه منا فرمودید و از زمان ایراد خود به حالا این رو هم بفرمایید که انشانه در روزهای بعد که یکی این سفست ها رو هم بهش باید باید باید شاید خیلی جالب باشه گاهن ما در جریان انقلاب به این برخورد میکردیم و در زمان خودمونم و که این مسئله حد اجتماعی پیش میاد این سال به خود مطرح میشه رهبری انقلاب. ما امام مقامعظم رهبری چه موضع گیری میکنن چی میگن بله حالا چه مسئله اتفاق افتاده چه سرفصلهایی رو انتخاب میکنن برای ارتباط با مردم برای ارتباط با خواص برای جهت دادن به هایی که نباید فراموش بشه بله حالا ان در جلسات بعد این مسائل دقیقه کارهایی که معاویه کرد و شناخت شناخته زمانه حضرت و بر... زمانی که از این خطبه رو مطرح کردن در اونجا خیلی واضح انشالله خواهد شد این سال مطرح میشه خب معاویه انچین شخصیتی داره که بعدا خواهیم گفت جامعه به این تشتت رسیده اختلافات شدید شده فساد شویع او پیدا کرده حکومت هم که داره موروسی میشه کاملا داره همه چیز برمیگرده به طبیل آقا میران مؤمنین جاهلیت ثانیه برمیگرده بعد شدید در حضرت آقا میران مؤمنین فرمودن که وقتی حکومت دست حضرت دادن شما برگشتید به دوران جاهلیت خودیتون برگشتید من دوران شما رو باید اونجا بیرون بیارم یه جاهلیت زمان رسول الله بود حداقل بی ادعا بودن یه جاهلیتی کور بود بله. این دوم یه جاهلیت مدعا بودن هم جاهلیت داشتن و هم ادعا داشتن و هم اون زمان فقیر بودن الان اسلحه دارن الان نمیدونم قصر ها رو گرفتن هر کدومشون چندی چندین کنیز دارن چقدر باغات دارن چقدر تلا دارن چقدر جواهر دارن دیگه کندن این عرب پول داره خیلی اوز میخوام بیدین نفه از جاهلیت خودش خیلی سخته درسته خب حضرت چه مهورهای رو انتخاب کردن من مهورها رو الان به شد خیلی فشرده میگم بعدا استنادات خودم رو در جلسه بعد میارم که کاملا واضح حضرت وقتی که جمعیت رو جمع کردن هم دو صناعی خدا رو داشتن این چرا اینقدر اصرار هست؟ امیر المؤمنین بیاد هم در صناعه داشته باشه که من اعتقاد به این دارم این میماند که شام و اهل شام و اونا که تحت تربیت از کنم حضور شما معاویه بودن علی رو قائل نبودن نماز بخونه و اینقدر اهل بیت رو دور کرده بودن که نوزو بله بعد اینها خارجی سرد میکنن. خارججا بو کش معلومه قتل زیر پای دوم و اسبان بعد بره. اینا فرهنگ سازی شده. حضرت بیان معرفی میکنن این نور رو مشخص میکنه. همه اونام هم شهادت مین از تابعینن از اصحابن. محور اصلی هم و ثنای خداست. محور دوم که بسیار محور مهمیه حضرت آیاتی رو تفسیر میکنن، بیان میکنن. چرا از همه قرآنی آیاتو حضرت انتخاب کرد؟ چه خصوصیتی داره که من این آیات رو مطرح میکنم به ساعت خلاصه نمیخوام تفسیر قرآن اما انایتی که آقا و عبدالله به این آیات دارن مشخص میکنن و خودشون در خربه تحلیل میکنن که ببینید مخاطب این آیات که اکتران هم برای علمای بنی اسرائیل و بزرگان بنی اسرائیل که اینها به وظیفه خودشون عمل نکردن یتیهون افلعرز چهل سال سرگردان بودن شصت سال گذشته این تیح و سرگردانی این تشتت و این دور شدن نتیجه اینه که افراد وظیفه وضعه خودش رو عمل نکردن این دوسته. فاز دوم فقره دوم بحث حضرت فقره سوم حضرت میان ولایت رو مطرح میکنن دونه دونه ولایت آیاتی که در مورد شعن و منزلت امیر المؤمنه مطرح میکنن بحنه. چه شعونی رو مطرح میکنن در اونجا مطرح شده آیا نبود که امیر جد من پدر من حضرت اینجور فرمودن دونه دونه شهادت میگیرن همشون شهادت میدن که بله ما این رو شنیدیم شاهد بودیم حالا چرا کاری حضرت انجام میدن؟ شما که تحقیق در تاریخ که وهابیت رو انجام میده بارزترین صفات قرآنی که نسبت به امیرالمؤمنین المؤمنین هست رو دارن تکذیب میکنن تو کتاباشون محو میکنند کسانی که قائل باشن به این حرفها رو مشرک میدونند حدیث منزلت رو نف میکنند حدیث فقلنی رو نف میکنن، احادیثی که هنوزم تو کتب خودشون هست نسل بعدی که داره تحلیل میکنه به عنوان وحابی مطرح میشه به عنوان اسلام ناب میخوان خودش مطرح کنن، کنند توحید رو میخوان در جهان گرایش بدن که همین حرکت معاویه است اونها باید معاویه امیرالمؤمنین باشه باشه چوکارا که میخوان بگن میخوان اسلام رو از درون فوق کنن مجبورن حقایق رو نف کنن تحریف کنن کتمان کنن درسته نمیتونن که رو خورشید دو کنار بذارن اول کنارشو میزنن تحریف درش ایجاد میکنن تبدیل ایجاد درش میکنن بعد کتمان کاری که بنی اسرائیل کردن وقتی که آمدن حضرت موسی علیه السلام بهشون فرمود که مگر شما این کارو بکنید در خدا شما رو عزت داد ففکروا نعمت الله علیکم خدا نعمت به شما داد فاول علی العالمی خدا میگه من شما رو بر همه عالمین فضیلت دادم به خاطر ایمانتون و به خاطر به ما صبرو امت عرب امت اسلام اون تعبیری که خانم حضرت زهرا داشتن با رسالت پیامبر و با وحی عزت پیدا کردید اگر امروز ذلیل چند میلیون یهودی هستید سه نیست هستید به خاطر از اسلام دور شدید به اسلام برگردید ایران عزت پیدا کرد چون اسلام رو محور قرار داد آقا ابو عبدالله الحسین در فقره سوم اول سنا و حمده منه. یک دو دوم آیات قرآنه منه. تحلیل آیات قرآنه که چرا این آیات رو مطرح میکنن سوم بیانه ولایت هست بله. توحید و ولایت است فقره بعدی که از اینا رو تحلیل. سوم شرایط اجتماعی و این که این شرایط ایجاون از چی ایجاد شده فساد شوی و پیدا کرده بله. امت متشتت شده اسلام کنار رفته تبعیض آمده حقوق زایع شده فقره شدت پیدا کرده ثروت اندوزی ملاک شده فقر است بعد تعین مسئولیتها تعیین حفرهها تعیین مسئولیتها و بعد حضرت میفرمان اگر شما به وظیفه خودتون عمل کردید و توانستید آگاهی رو ایجاد بکنید و تونستید حق رو به مقر خودش برگردانید نهایت خطبهٔ حضرت است که در این فقرات باید نوع عنایت ادبیات حضرت کاملا مشخص بشی اگر این کار رو کردید امید هست به اینکه به اون افتخار گذشته ایمانی خودتون بازید. که پرچم بزد کردید و الا من جز از به این رفتن شما و از به این رفتن پایه های اقتدار دین دی چیزی نمی بینم کمی تعبیلی که حضرت فرمودن ما خرشتو اشرن ولا بترا انما خرشتو لطلب الاصلاح وقتی حضرت از این ناامید امید می اون رو شروع میکنن که اصلاح در امت جذشون هست اونم با ایجاد یک حرکت عظیم و حرکت آشکار آشکارکننده و کاملا دوست و دشمن رو متفرد رسالت به حدی که شهادت و اسارت دو بال اصلاحگری حضرت قرار میگیرد. خیلی ممنون و متشکرم از شما ای دوجودی خوبی رو ان در روزهای آینده مطرح خواهیم کرد و بیشتر راجع صحبت خواهیم کرد ای دوجودی التماس خیلی دارم ازت خدا نکنه ما سلامت میآید اما نه به رنگ سبز بلکه به رنگ سرخ آبها جاری می شود اما نه با تراوت بلکه با آهنگی قمالود صدها سال است صدها سال است آب قمی بر دارد بهار شیعه میآید فصل لالهای سرخ فصل باران خون و اشک فصل قاشتن پس قیام دعوت میکنیم از شما عزیزن که بخش دیگری از این برنامه رو بشنوید که سخنان حجاترستان و مصمی استاد دهشیری است در درس های از آشرا. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبدالله در آستانه 1372 مین سال یرده حادثه خونین آشرا هستیم ضمن عرض تسلیت به همه شما شروندگان گرامی دو رو به سرعتی فشرده و کوتاه مورد توجه قرار میدیم. نکته اول اینه که امام حسین علیه السلام فرمود یا فیعسنه. زندگی من برای شما اسوه الگو و نمونه است. برامید میتونید از اون درس بگیرید و باید بگیرید. نکته دوم حادثه آشورا رو از سه جهت ما میتونیم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم. یکی علل و انگیزه های اون رو بررسی کنیم. دوم به درس های آشورا بپردازیم. سوم ابرت های آشورا را مورد توجه قرار بدیم. که انشاءالا ما بیاری خدا در برنامه های پیش رو سعی میکنیم به درس‌هایی از آشورا بپردازیم. درس اول اخلاص اخلاص عنصر کمیاب و گرانبها در صحنه آشورا و کربلا در همه جاش به خوبی قابل مشاهده است. این اخلاص هم در نیت وجود داره و هم در عمل وجود داره و به خاطر همینم هست که هرگز حادثه آشورا از ذهنها و از تاریخ محو نمیشه. برای اینکه توجه کنیم این اخلاص شگوره در تارپود آشورا وجود داره، ما به بعضی سخنان حضرت اشاره میکنیم که چه به صورت وسیعت به دیگران دارن، چه به صورت سخنانی، چه به صورت شعار و دعوت. مثلا، وقتی که ایشون، داره در وسیعتنامش به محمد حنفی برادرشون انگیزه قیام رو توضیح میده میفرماد من برای خودکامگی، خوشگذرانی، فسادانگیزی انگیزی و ستمگستری خروج و قیام نکردم انما نما خرشتل اصلافی امت جدی من میخوام در امت جدم اصلاح به وجود بیارم خوب این اصلاح رو برای چی میخواد شکل بده؟ آیا جز برای خدا به این حرکت اصلاحی دست میزنه؟ در زیارت حضرت در خطاب بشون بخونیم اشحد انک دعوت الله و الى رسوله و وفیت به اهده و قمت به کلماته و فی الله حتی اتاک الیقین شنوندگان دقت کنید چند بار لفظ خدا آمده گواهم که تو دعوت به خدا و رسول خدا کردی وفای به عهد او کردی و برای اقامه کلمات او قیام کردی و در راه خدا به جهاد پرداختی در تمام این موارد شما چه مشاهده میکنید الله هست توفی فی سبیل الله و این نشانه اخلاص یکی از های بزرگ آشورا همجور که برزور بسید که در سراسر این حادثه وجود داره امیدواریم ما هم بتونیم دست لازم رو از این اخلاص عبا عبدالله و آشورا بگیریم و